انبیاء علیهم مصلاة و, و سلام وقتی که تشریف آوردن خداوند متعال برای هر پیغمبری مسئولیتهایی را گذاشت از این مسئولیتها ای که ویزکیه هم اونها رو تذکیه،, تذکیه بکن تذکیه کردن نفوس بشر ای از وظایف چهارگانه انبیاء علیه مصلاة و, و بود تذکیه رو تذکیه یعنی پاک کردن باطن و آمال انسان از چیزهایی که خلاف شریعت باشند و آنها رو بسیر زیبا آراسته کردن حالا وقتی که نفسها آلوده بشند انسان چندین گناه رو انجام میده گناه ظاهری داریم و گناه های باطنی داریم در دا قرآن مجید خداوند مطالبی نقطه هم اشاره می کنن چیزهای باطن انسان ها را پس وقتی که تزکیه حاصل شود باطن انسان نورانی می شود باطن انسان زیبا می شود باطن انسان معتر می شود اگر کسی بخواد که خوشبو از جای بیرون بیاد برای بیرون آمدن خوشبو با اول بدبور از بیم براد اگر بدبور باشه و بعد از اون هرچی خوشبور هم استعمال بکنید شما اون اطره شما زیاد زیبنده نیست زیاد خوشبور نیست چون غاطی و آلودگی هست پس برای این که خوشبور خوشبور باشه برای این که انسان زیبا باشه بل اول ایو رو بر برداره ایوها برداشته بشن و باطن کسافت رو بداره خود به خود یک زیبای حاصل میشه بعد از اون زیبایی بالا زیبایی میشه انسان نورانی میشه و منور میشه که باطن انسان داره گناهای بسیار زیادی هست و اون گناه ها از خداوند متعال دور میکنم. کنم هر گناه تمام گناه که هستن گناه ها از اونها و چوبها و حیزمهای جهنم گناه گرمه گناه داغ هست گناه آزوغی جهنم هست این از که نبی مکررن سلام صلی الله علیه وسلم در دعاهای مبارک شد که خدای نقی من خطایا بالمای والبرد و سلج خدا از این گناه ما رفع بکن با آب با یخ با تگر با آب سرد همیشه اینجوری در دعای با آب یخ مارد چرا؟ که گناه داغ هست گناه هیزون جهنم هست هیزون جهنم داغه انسانی وقتی گناه میکنه بر اولین بار عرق میکنه وقتی خطای میکنه استراب پیدا میکنه داغی گناه هستین پس وقتی گناه داغه از دوگه جهنم هست و تا زمان اینها در انسان باشند باطن سقیقه داده نشود خیلی چیزها رو درک نمیکنند برای درک خیلی چیزها برای کشفیات برای اینکه باطن انسان چیزهای رو ببینه باید پاک باشه در این حدیثی داری که مبرازی رحمه الله در تفسیر خودشان آوردیان می اگر اینها نواشان و این موان نواشه انسانها چیزهای خیلی جالبی رو می بینن غیبیات و مشاهده می‌کنند. خداوند متعال عمر پرمودن که انت عبدالله کانک ترا فی لم تکن ترا فی انو خدا را طور عبادت رو گوی اللہ رو میبینی شما زمانی خداوندو میبینی باید در مسیرتان وقتی میخوای حق را تشکیز بدهید و حق را ببینی، باید اون موانع، اون چرکها، اون چیزهایی که در جلو قرار دارن برداشته بشن بعد حق مشاهده میشه باید پس باید باطن اصلاح بکنیم از برای اصلاح باطن حالا اصلاح آمد انشاءاللہ سایمی کنین که براتان این چیز رو بگیم لاغر اصلاح بشیم باطن را اصلاح بکونیم بعد چیزهای جالیبی رو مشاهده میکنیم سوال در مورد دروغ آمد که دروغ در دروغ توضیح بدم اینو بدانید تظاهر هر کسبی خاص یک چیز بی رو حاصل بکنه با مشققات و تحمل بکنه باید تمرین بکنه با خودش عهد بنده دوباره این کارو نمیکنم تمرین. تمرین تمرین تا اینکه از اون گناه برداشتہ بشه خداوند متعال در قرآن مجید یک آیه فرمودیان که در مورد انبیای اولی که ماذین انعم الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدا و شهدا و با کیان خدا انعام کرده انبیین و صدیقین و شهدا خداوند متعال از نبیین صدیقین و ذکر کرد صدیقین بعد از نبیین و بعد از صدیقین بیا بعد شهدا ذکر میشن پس مقام صدیق مقام راستگو در نزد خداوند متعال بسیار بالا خوب توجه کنید چون دروغ یک مرض بسیار مخلک و یک صفت بسیار زشتی هست که مسلمان به آن گرفتار است. حالا خداوند متعال مقام صدیقین را راستگویان را بعد از انبیات ذکر کرد بعد از سهده اله بعد سهده میان. شهید چقدر بزرگ هست مقام شهید بهدی بالا هست که بالاترین مقام برای هر انسانی که حاصل بکنه مقام شهادت هست. اگر انسان با مرگ شهادت از دنیا بره به بالاترین درجات اون رسیده. اما صداقت از شهادت مهمتر است. صداقت از شهادت مهمتر است. خلاصه در مطال صداقت را بعد از نبوت ذکر کرده. اینجا نکته ای هست. کسانی که همیشه در قول و فیل و افعال و کردار خودشان صداقت داشته باشند راستگویی داشته باشند و از دروغ پرهیز بکنند در گفتار آنها دروغ نباشند در کردار آنها دروغ نباشند بین خودشان و بین پروردگارشان راست باشند خداوند متعال بر زبان چنین افرادی کلمات وحی را اجرا می کند جا اگر به سخن بگوید یا مشوره بکند چیزی بر زبان جاری میشه همون جمله هست که خداوند متعال القام می کند چیزی که وحی میگوید. صدیقین اینو می گوید زیرا که در قضوه صلح خدیبیه وقتی حضرت امیر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه از صحیح ناراض بودن چرا این شرایط پذیرفتن؟ آمد پیش صدیق اکبر وزی الله تعالی نو گفت ابو بکر مگر پیغمبر پیغمه حق نیست مگر ما حق نیستی مگر دیر ما برحق نیست مگر شهدائی ما در بهش نمیره مگر مقتولین آنها در جهنم نمیرون گفتن چرا؟ گفت پس چرا این شرایط پست و بسیار خیفت را در دین ما قبول بکنیم صدیق اکبر فرمودن که نبی مکرم سلام بنده خداوند متعال هست و خداوند متعال ایشان را ضایه نمی کنند معمول به اطاعت اللهی هست و خداوند ایشان را ضایه رد میشه نبی کریم صلی الله علیه و همین هر آرزد یا ول پیش نبی کریم را بعد پیش او بکر اومد به این هی همین جملات نبی کریم گفته بودن همین جمله که اینجا عوبق بکار برده همین جملات قبلا نبی کریم بکار برده بوده من بنده خدا هستم من معمول خدا بنده متعال هستم خدا بنده متعال هستم خدا بنده متعال هستم پیش عوبق همین جملات آمدن صدیق بود در گفتال صدیق بود در کردار صدیق بود چیز را بدون تحقیق به زبان نمی آورده این از که در وقتی که حضرت آیشه رضی اللہ تعالی در تهمت مسئله ایخ گرفتار شدن و تا پنجاه روز واحی نامد بعدها وحی نازل شد حضرت عایشه گفت پدرجان دفاع کن. چیزی نگفتن بعدها که از آسمانها نازل شد خداوند متعال آیاتی رو نازل فرمودن همین اعتراض و حضرت آیشه گفت پدرجان چرا از من دفاع نکردی تو میدونستید که من پاکم فرمودن که ای جسم ماین توزلنی و ای الاده توقلنی اذا قلت ما علم عالم, عالم کدام آسمان مرا سایه میکنه و کدام زمین منو بر میدارم اگر من جمله ای رو به کار که من اون را نمیدانم وقتی که نمیدانم چجوری بگم من دفاع میکنم ابوق صدیق حتی از دخترش که جگر گوشه بود حریم نبوت بود بهترین چیزش بود دفاع نکرد من نمیدونم تو پاکی پاگ نیستی. بعدها گفت که کدوم آسمان رو سایه میکنه و کدوم زمین ما رو بر میذاره، ما چیز که نمیدونم بگویم. من نمیگم. بعد انسان صداقت تا این حد وقتی بالا باشه خداوند مثار بر زبان چنین شخصی کلماتی اجرامیشان کلمات, کلمات وحیان داخل صحیح بخاری دارین نبی مکرم اسلام فرمودند که کسانی که اون چیزی بین دوتا زبان در دهان قرار داره. و به دوتا پا قرار داره اگه اینها رو برای من تضمین بکنه، از اینها حفاظت بکنند، من برای این شخصی تضمین بهشت میکنم تضمین بهشت میکنم یعنی کسان شعرمگاه خود را حفاظت بکنن وزبان را حفاظت بکنن تضمین بهشت این من میکنم اینجا نبی مکرم اسلام چیز بسیار بزرگی ایراد فرم بودن خیلی ها تا حفاظت میکنن شرمگاهارو در جای غلط استفاده نمیکنن، اما این حفاظت زبان بسیار سخته. اکثر گناه هایی که انسان ها به خاطر زبان هست از عموما گناه های انسان از زبان ها بیرو میان گناه های بزرگ کبیره از زبان هم چیزهایی که انسان های به جهنم میاندازه در بعدی روایت داریم که حساید و السنتین دروکرده های زبان هایشان هستن زبان ها اینها رو درو کردهن. زبان گناهای بسیار بزرگ بارندگی انجام میدی غیبت از باز زبان دروغ از باز زبان از باز زبان تکبر از باز بدگویی از باز زبان و گناهای بسیار بزرگی که انسانها ها بصیری زبان دشمن دادی از باز زبان خیلی چیزها را باز زبان ها مرتکب میشوند پس کسی زبان را کنترل بکند خداوند متعال او را بهشت میبرد پس از خیلی گناه ها بیرون میآید. در یه حدیث داریم که نبی مکرم اسلام فرمودن صلی الله علیه و داخل ترمیم زیم می آید. اگر انسانی هنگامی که دروغ از دهنش بیرون می آید فرشته تا اندازه یک میل یعنی دو کیلومتر فرشته ها فرار می از بدبوی دروغ، از بوی کسیف دروغ و انسان دروغ بیرون می کنه به اندازه یک میل یعنی دو کیلومتر فرشته های رحمت کم راشه ماشته فرار می کرام فرار فورا نمیکنه دروغ ها رو می نویسن فهده رفتن اونها دروغ ها رو می نویسن اما فرشت های دیگر اون مخلوق پاک الهی اونهایی که معطرن اونهایی که پاکن اونا از بدبو فراری ام از چیزی کثیف فراری ام در حدیث داریم وقتی که پیاز یا سیر استفاده میکنی یا چیز کثیف بدبوده رو میخورید مسجد میایید تو فرشت ها اذیت میشه؟ پس از بو ناف از گد میشم یک از بدگوها دروغ است انسان دروغ بگه فرشته فرار میکنه دروغ شخصیت انسان از بین میبره دروغ موقع انسانو تخریب میکنه دروغ انسانو سوبوک میکنه دروغ انسانو بی اعتبار میکنه دروغ انسانو یک چهرهی کریه از انسانها به نمایش میگذارد این دروغها باید استنها برند بیرون اخراجات ولیدن عامر میفرمائند که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم خونه ما بودن و مادرم گفت بیای چیز بهت بد بدم نبی کریم فرمودن چیز دیداری بشمیدی؟ میدی گفت بله میخوان یه خرما بهش گفتن اگر چیزی نمید داشتید و فقط به خاطر یک رو آرام بکنی و فری بدی به اینجا چیزی میدم برای تو یک دروغ و گناه دروغ اونجا نوشته میشد یعنی گفتن دروغ حتی با هم جایز نیست حالا ما متاسفانه داریم از داخل گهواره بچه ها رو با دروغ پرورش میدیم. به چیزی میدن چیزیم داخل جیبش نیست داخل دستش نیست دارن دروغ میگویند. بچه ای که چیز اول در ذهنش میره با دروغ پرورش میاده کن... می آینده چکار, چکار میکنه دیم؟ بسیار خطرناک هم برای جامعه خطرناکه در پسته ها دروغ میگه در مسئولیت ها دروغ میگه در کارها دروغ میگه در محصولات اگر تولید میکنن دروغ میگن حالا میبینیم محصولات نگاه بکنی فورا فروخته میشه با بعد تر از میکنن پرست میکنن پرس فعلی بابا پر است نسبی هم نیست هر چیز رو نگاه بکنی درم بعد و پرش میکران میفرستان اینها در, در گهواره با دروغ به دور شدن اونها دروغ بوده در روز مردم کلاه میگذارن اینها که امروز ما میبینیم، اینها کارهای گذشته ما هستند. چیزهایی باید رشد بدیم و پرورش بدهیم. آینده سفرات منفی اینها دود آنها به چشم خود ما بری نگردن. نگاه کنید. کنید کنسروها هستند که گویی این قدریت یک متری و داخل چهار گرم یا حتی تا که چه خیانتهای بزرگ داخلش نیست. هر چیز رو نگاه بکنی، نیاز داریم چون همه تومان شرل تجربه دارید دیدید. اینقدر دروغ و خیانت دارد جذب میشه. اینها از کجا هستند؟ چون با دروغ روش کردند. در وجود نه دروغ عجین شده است به هر حال خداوند متعال دروغ را لعنت فرستاده بر دروغ گویان ابو سفیان قبل از اینکه مسلمان بشه در سفری به سرزمین شام رفته بود با حرقل اونجا حرقل این کافری بود در مورد نبی مکرم اسلام صلوات صلوات سوالاتی پرسید گفت اگر دروغ بگی خیرت نیست اینجا بعض و هر جایی که ابو دروغو، دروگو الان اشاره کنیش با سخرانوش روش رو سوال جوابها اومدن هنگام سوالها که تکرار میشدن ابو صوفیان دیگه جواب میده جواب میده آخر میگه که من اصلا دروغ نگفتم به خاطری نک از اینها میترسیدم به خاطری فردا مردم میگن که سردار علمه که گفته من به نام خودم دروغ را زیبان نمیدونم پس دروغ گفتم با بچه های نوالی هم جایز نیست. با حتی ایک از محدثین می گفتن که حتی با حیوانات هم ضرور جایدنی ایک از محدثینی که حدیث را جمع واری می کرده حیوان داشت اسبی بود چیز فرار کرده بود دامان شکرید اینجوری بیا بیا یعنی داخل دامنمان من جو یکندوم یا, یا یونجی حسبت بده بعد باید پرسید که داخلی چادر داخلی دامان چیزی هست نه گفتن چیزی لید و فرمودن کسی که با حیوان دروغ بگی من ازش شخصی حدیث شد نمیگیرم ما شاعر چند شخصی نمیشین دروغگو هستین حالا نگاه کنید چقدر دروغ از صورت اعرار که میخوابید نگاه کنید چند دروغ گفتی حالا با خانم هم دروغ نگویی حتی در احادیث داریم که حتی در احادیث داریم که حاوو با حاوو هم دروغ نگویید جائزه حرامه داخل سعید بخاری حدیثیه ایک صحابی ارسی قدید یا رسول اللہ من دارم و آغاز دواج دواجی من کرده اگر آلا به من چیزی نمیده اگر من در مقابل اون حبو بگم که برای من این چیز دهارو ده می آورد در حالی که نمی آورد تا اون بسوزه تا اون ناراحت بشه این جایز هد فرمود اگر کسی چیزی رو بگوید که اون چیز به داده نشده و خود را انجوری نشان بدهد گویا که تو دست دلوغ بدترین گناه هست گناه بسیار عظیمی هست گناه بسیار بزرگی هست نبی مکرم اسلام فرمودند که که علیکم ستحه اے مردم راستگو باشید راست بگوید و صداقت را پیشه بکرید این صداقت شما را به بهشت و به نعمت های بزرگ الهی و به راه راست ادایت میکنه کسانی که راست گوه هستن و راست میگوین یعنی در نزد خداوند متعال یکتب و صدیقم صدیق, صدیق نوشته میشه نامی جو صدیقین آمار اله چون میخوادیگه میره بهشت آبای فرمودن که این یا کمالکزه بی بر حضر باز از دروق بپرهید از دروغ، زیرا دروغ, دروغ به طرف فجور طرف گناه انسان ها راهنمایی میکنه و فدور انسان به جهنم میاندازه کسانی که دروغ زیاد میگین یغتبو اند الله کذاب در نزد خدا دروغو میشه و دروغوها اونها ملعونن اونها از رحمت خداوندی دورن پس دروغ بسیار زشته حالا از این پهریس کنید چگونه پرهیزگاری کنی. حالا این مرض هست این مرض وجود داره فقط این است که تمرین کنید تمرین کنید اول سکوت صحبت نکنید من سمت نجا در حدیث داره کسی که سکوت میکنه نجات حاصل میکنه از صدق و تمانینه راستگویی آرامش داره اما دروغ چی است آرامی که دروغ گفت خودش میترسه فردا دروغ من فاش میشه آبرو میره آبرو ریزی میشه فردا کسی از دروغ و متله شورا حالا برای من حال چی بیماره اختلاف درست میشه درگیری درست میشه حیثیت انسان ها یک به پاش میریزه برای انسان آرامش ندارد پس منصب جا کسی که سکوت کنه جا حاصل میکنه در این حدیث داید نبی مکرر اسلام فرمودند که من کان یوم بالی اقل یقول او لیسمت کسی که به آخرت ایمان داره به الله رب العالمین ایمان داره یا حرف خوب بزنه یا سکوت میکنه حرف زشت نذارید حرف دروغ نگوین اینها باعث دوری دوری خدا از الله رب العالمین صد حدیث دارین داخل کردین آمده خود دروغ انسان را از الله رب العالمین دور کند. اینها حرف زیاد قلب ها رو سخت میکنه حرف بیهوده انسان ها رو از الله رب العالمین فاصله میدهند از اینها بپرهیزید با خود ما اراد داشته باش حالا اینجا آمدیم از این هفته تا هفته بعدی کنیم میام الله حالا تمرین کنین دروغ نگیم نه با خانون دروغ بگی نه با دوستان دروغ بگی نه جوکر دروغ تعریف میکنی نه شوخیات دروغ بگی اینا هر بزاری کنار همینا هر بزاری کنار وصای کریس رکود حرفی داشتی بگید نگاشتی الکی حرف نزنید تمرین تمرین کنی باطن واسقه داده میشه اگر باطن سعیقه داده شد بعد نورانی میشیم ما بدن از معتبر میشیم اونجا مهم قرار میگیریم و خداوند به از باطلشان نور بیرون میکنه بی و با نور باطل مسیر را میشود مسیر که روشن شود حق را میبینید حق را از باطل تشخیص میدهید متأسفانه همه در هر لباسی هستند دروغ خیلی زیاده خیلی عام شده قسمهای دروغین میخورن در معامله وقتی میکنن قسم میخوره قسمهای دروغ در حالی که در حدیث داریم کسانی که قسم‌های دروغین میخورن برای فروختن کالا خداوند مطالب برکت رو برمی دارد برکت در خود مال نیست در کالان نیست از اینه پرهیز کنی از این فاصله بگیری و فقط با تمرین فقط با تمرین به خودتان، وانه بچهارو وادار بکنی راست خود خودت راست بگوید و خانو وادار بکنی راست بگی اگر خدای نخواسته در خونه ای در خانوهای دروغ حکیم بود اگر آغای خونه دروغ بگه قاطن بدن خانو درو میگه پس یانه خود به خود در خودی حاکم میشه شیطانی ها حاکم نشه اینم دروغه اون هم دروغ یکی که دوستان با معبود در مسیر سفری اونجا گفت علی سوالی که چگونه از این دروغ من دیگه پرهیز کنم چون دروغ خیلی زیاد بیگو گفت خیلی زیاد من هم میشناختم گفتم گفتم دروغ نگو گفتم حتی با خانوم گفتم حتی با خانوم گفتم نه با خانوم گاغا گا دروغ میگم گفت دروغ تو وقتی مادر شما اصلا دروغ نمیگه، خانوم تریش واسه خوب اندیشون هسته. وقتی داره دروغ میگه، دروغ میگه. پس اون اطمینان شما، اون اعتمادش از خانواده برچیده میشه. باها شیطانیا حاکم میشن. فاصله حاکم میشن. بچا با دروغ رشد میکنه. پدر بر خانواده شک میاد، وسواس میاد. اون محبت و الفت از خانواده برچیده میشه. با هر کاری میگه، با قسم بخوره تا باور اما اگر دروغ نباشه خود به قسم برچیده میشن نیاز برای قسم نیست تو میدن دروغ نمیگی این اوناهایی که دروغ میگن باید هزار تا قسم بشمدی قرآن دروش بگذاری هر راست میگه دروغ میگی تشخیص راست از دروغ بسیار مشکل شده است بیار حال از این مرض محلکی چیز خیلی از گناه ها رو دنبال اون هستا قرهیش کنیم سعی کنیم تمرین کنیم این والا ضررهای مالی بکنیم یکی جایی که رفتی گواهی رف نداشتی بگو ندارم دروق نگو که تو خونه گذاشتا بگو ندارم دوائی ناوی این ها بزاره ای جریم این پنجه هزار اما از اون گناه اونجا سبت بشه بدتر نیستین این بدتره گناه ها بدتره و الله انسان ف در کل کاره در معاملاتون راست بگیر خداوند متعال می آورد زندگی پر از مهر و محبت میکنه از ضلوع ها فاصله بگیرید تمرین <تصفح> فقط تمرین تازمان تمرین نکنید این از بین نمیره بعد اینها رو بعد تمرین تمرین کنی تمرین کنی با خودتان این دفتر برداری دفتری یک کاغذی. هر جد گفتی اداش کن امروز من چارت درور گفته فردا فلا مسئلاتی رو بزاریید فلا همین رو تعतील کنیم ان بعدها الله بعدا مسئلاتی رو دیگه خود است فقط در جنگ جایزه است در جنگ ها وقتی با دشمن که روبرو هستین دیگه میتونید رو بگید اینجا نه اینجا بزاری فقط تمرین کنی چند تا دورو گفتی اگر انسان فقط خودش رو اصلاح بکنه بافش اصلاح بشه موفق میشه اگر خودش نخواد نمیشه با خودتان بخواهید اراده بکنید تصمیم بگیرید که ما با از این مرض پاک بشیم بعد احساس چقدر سوبق انسانی گناه داشته باشه بدنش سنگین است همه رو دروغو میگه چون خودش دروغ میگه همه دروغ میگن شما نگاه کنید این نکته رو براتون میگم ببینید این اولمای بزرگه نه چقدر صادقن همه تو میچکا صادق هستن حرفاتون صادق هر شما میگی باور میکنید علتش کی چون خودشون فاقن باطن فاقه فکر میگره همه تو مثل اونها هستید عملکت خودش کسیفه فکر میکنه اونها هم همین جوریان، اصلا باورش نمیشه. هر سیام بود باورش نمیشه. چرا؟ چون خودش خرابه، خود خراب است. دیگران خراب میبینند، خودش پاک باش دیگران پاک میبینند. این از معمولی همیشه فادی میشه. دستیار فادی لور میشه. چرا؟ چون پاک میشه، ای داخلش نواشته دیگران مثل خودش پاک میبینند. پس اینها سعی کنیم، میشالله که اینها رو بر بداریم تا که دوباره مشکلی ایجاد نشه. و روز پیام شرمنده نشیم پر از دروغ نباشه که دروق کی وقت اونجا رو گشن دیگه رسوائی هست جو به کل مرد دروق ها رو, رو میکنه اونجا